إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستغفر عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فَيَحْدِهِ اللَّهُ صَلَاةً وَسَلَامًا وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَائِلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَزَوَاجِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين دوستان و سروران گرامی جهان در این عصر جدید و مدرنیته با وجود اینکه به لحاظ امکانات رفاهی و به لحاظ ها هر روز در حال رشد و ترقی هست و هر روز اختراعاتی جدیدتر و جدیدتر وارد جامعه میشه به همون نسبت یک پلاتوم روحی و یک آشفتگی درونی در جوامه انسانی در رشد میکنه در کنار این همه اسباب و امکاناتی که برای آسایش جسم مهیا شده ما بینیم که آرامش و روح رو از دست دادیم در کنار این که بشر داره تلاش میکنه تا به لحاظ در این عصر مادی در بعد مادی خودش رشد بکنه به همون نسبت بشر رو بینیم که به فقر معنوی و برشکستگی روحی رسیده و چقدر حالت بحرانی و سختی برای بشر به وجود آمده که بحرانهایی رو در عرصه های مختلف این بشر در همین قرن بیستم و بیستییکوم داره تجربه می کنه بحرانهایی که حتی بهترین سازمان ها و تشکل ها هم از حل این معضل و مشکل آجز موندن واقعا وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم عصر ما و زمانه ما با اون عصر و زمانهی که انبیا علیه و السلام و سلام مبعوث می بسیار نزدیک یک جهالتی ولی مدرنیته یک جاهالتی ولی نو و جدید در همین عصر ما امروز داریم مشاهده میکنیم و این جاهلیت خیلی شباهت داره با این جاهلیتی که در قبل از اسلام دنیا او رو به خودش تجربه کرد فرق نمی کنه به تعبیر امام الدعوه علام ندوی رحمت الله صلی که ما در چه عصری هستیم و در چه زمانه هستیم و چه اختراع و اکتشافی رو داریم تجربه می کنیم. مهم اینه که هر عصری که بشر از تعالیم روح بخش انبیاء علیه السلام فاصله گرفت اون عصر عصری هست برای جاهلیتی نوین، برای یک جاهلیتی مدرنیته حالا میخواد این جاهلیت جاهلیت قبل از اسلام باشه یا جاهلیت قرن و باشه اون زمان هم بشر در لبه فرکای علاکت قرار گرفته بود و امروز هم ما شاهدیم که بشریت در لبه فردگاه علاکت هست دنیا از نفرت فراکنی شده دنیا از دحشت و ظلمت و نفرت شده دنیا پر از شین توزی و اداوت شده هر روز ما میشنویم در جاهای مختلف مانورهای نظامی بزرگی در حال اجراه شنیده میشه که دریاها پر شده از نابه بزرگ جنگی شنیدیم که فضا و جب آسمان حتی آماده باش نظامی اعلان شده و اونجا هم تلاش میکنن تا فضای حتی آسمان ها رو پر از اسلحه بکنند با انواع های مختلف شنیدیم که پایگاه های نظامی در کشورهای مختلف در حال رشد در هر کشوری پایگاه های نظامی جدید و جدیدتری به وجود میاد شنیدیم که امروز در هر گوشه دنیا اطراف و اکناف عالم انوا و اقسام های کشتار جمعی داره رشد میکنه تعالی و فرقی اینها رو داریم میبینیم اینا نشان از چیه؟ خدمت حضرت مولانا محمد یوسف کاندهلوی رحمت الله حضرت علی شخصیت دوم در دعوت گفتن چی شده که این همه گرانی آمده تورم آمده یک زمانی در هند گرانی و تورم زیادی آمد چی شده که این همه اجناس اقلام مختلف روز به روز داره بالا و بالاتر میره چکار باید بکنیم چی شده کی مسئوله؟ مولانا میگه جمله جالبی فرمودن فرمودن که ببینید وقتی قیمت انسان میاد پایین، قیمت اجناس و کالاها میره بالا وقتی قیمت انسانیت آمد پایین قیمت آدمیت آمد پایین خود به خود قیمت چیزهای پست و دون و فرومایه در جامعه میره بالا اینا مثل یک کفه سرازو هستن یه پله سنگین بشه پله دیگه ثبت بشه زمانی که قیمت انسانیت بالا رفت مکارم اخلاقی و انسانی تو یک جامعه رشد کرد و دنیا تونست قبل از این که کارخانجات مختلف درست کنه برای فناوری های جدید به طور کارخانه های انسانسازی درست کنه بتونه ارزش‌های هایی رو به جامعه منتقل بکنه که در اون جامعه اون آدمیت و انسانیت رشد بکنه خود به خود قیمت اجلاس اجناس و اقلام میاد باید. ما باید تلاش بکنیم قیمت انسانیت رو ببریم بالا دولت‌ها، ملت‌ها همه در کنار هم دیگر اگر تونستن دست به دست هم بدن و قیمت انسانیت رو ببرن بالا قیمت انسان با چی میره بالا ببینید الله تعالی انسان رو طوری خلق کرده که اون اعضایی که قیمت انسان رو میبره بالا خدا اونا رو بالا گذاشته و اون اعضا و جوارهی که قیمت انسان رو میاره پایین اونها رو خدا پایین گذاشت اون اعضا و جوارهی که در حد ضرورت تو وجود من هست هدف نیست فقط برای یک ضرورت یک نیاز بشریه و اونها رو من فقط باید برای نگاه من به اونها در حد یک ضرورت بشری باشه اونها رو خدا پایین گذاشته شکم و مقتضیات شکم شهبت شکم شهبت فرش اینا چیزهایی هست که الله تعالی اینها رو پست و پایین گذاشته اما نیازهای معنوی ما و نیازهای درونی ما اینا چیزهایی است که الله تعالی اون مدرکاتی که باید به قلب ما چیزهایی رو برسنن و قلب ما نهایتن اینها رو پردازش کنه و در قلب ما یکتری چیزها رشد بکنه اون اعضایی که این مدرکات رو از بیرون وارد قلب میکنه اینا رو خدا بالا گذاشته چشم ما باید درست ببینه چشم ما باید درست گریه کنه چشم ما باید افلا یتدبرون تدبرون القرآن قرآن رو ببینه در قرآن تدبر کنه آیات آفاقی و انفسی رو ببینه و با این آیات آفاقی و انفسی رب خودشو بشناسه این فکر ما برای اینه که ما باش فکر کنیم تدبر کنیم ببینید آیات اول اگر که بر پیامبر ما در زندگی مکی نازل می‌شد همه دعوت به تفکر و تعقل افلا یمبرون ال ال افلا تعقلون افلا یتدبرون اینه شده الله تعالی در زندگی مکی انسانیت رو دعوت به دیدن میداد دعوت به تفکر دعوت به تعقل دعوت به در حقیقت فکر و ذکر در مخلوقات خدا فکر کن خالق خودتو ذکر کن این فکر و ذکر تو رو به احتزاز در میاره به تعبیل مولانا تو رو بلند میکنه اما وقتی فکر ما شد فکر معاش، فکر آخر رو از دست دادیم به تعبیر مولانا دور از زمع ما فکر ما به جایی که فکر آخر بشه فکر آخر شد و به جایی این که این فکر ما ما رو به اون تعالی و ترقی برسونه به پستی و انحساطها برسونه، اون موقع قیمت ما میاد پاییم. یک ماشین وقتی پیش صاحب خودش ارزش داره که این ماشین بتونه بر اون ای که خلق شده بر اون وظیفه باشه من وقتی تو ماشین بنزین میزنم من وقتی ماشینمو کارواش میدم من وقتی ماشینمو رو چک میکنم لاستیک لاستیکش رو چک میکنم خیلی مراقبت ویژه‌ای ازش میکنم که این ماشین اون کاری که ازش طرفو انتظار هست بکنه اما اگه این کارو نکرد دیگه این ماشین میبرم گورستان ماشین ها میبرم تحویلش میدم که ارش بکنم قیمتی نداره میذارم دم خونهم نه تو سرما نه تو گرما مراقبتی ازش ندارم چون این چیزی که من از این ماشین میخواستم از ماشین ندیزد خداوند تمام این نظام آفرینش رو برای من خلق کرده هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا تمام اون چیزی که بر این کره خاکی وجود داره همش لکم برای نفع منه اینا برای ما انسانها ها خود درست کرده اینا مال ما هستن اما ما مال اینا نیستیم اینا آمدن تا من از اینها به عنوان ابزار و اسباب برای رسیدن به هدفم ازشون استفاده کنم اینا هدف نیستن شکم انسان هدف نیست بله انسان باید بخوره بر همینه که قرآن رو شما میخونید، عموما در کنار کلو و شرابو یک پیام اخلاقی یک پیام اجتماعی یک پیام دینی الله کنارش میاره. کلوم انقایه بعد کلو ولا دوستره. میید کنار هر کلو و شروع قرآن یک پیامه آقا برون ساعت بخوری یا کلون و یک تمون کم و تو انسانی؟ قرار خوردن و نوشیدن تو هم مثل خوردن و نوشیدن یک انس... یک حیوان باشه. اون میخوره تو هم می‌خوری. کنار هر کلو و شرب و قرآن عموماً یک پیام اخلاقیه. یک پیام اجتماعیه. بخورید و بیام شامید اسراف نکنید. بخورید و بیا شامید از نیک از از های طیب و پاک بخورید. بخورید و بیا شامید. چطور به فقرا هدیه بدید و انفاق بکنید اینا پیامه های قرآن. وقتی به سیرت مراجعه میکنیم خب نبی ما میخورد اما خوردن براش هدف نبود و وقتا میامد خونه سآل میگد از ازواج متحرات چیزی برای خوردن هست اگه بود میخوردن نبود میگو من روزم خوردن هدف نیست سنگ به شکم می بستن، اما هدف رو فدای خوردن نمی کردن. جیش و حتی صحابه کارشون به جایی رسیده بود که در این میدان کفشای پاشون پاره شده بود، اما نیستادن سر جاشون. گرسنه بودند، سنگ به شکم می بستن، اما سر جاشون با نمیستادن. تو خیر القرون، تو زندگی مکی، شکم فراموش می نماز نماد فراموش نمی شود. امروز جامعه ما چطوریه؟ کده با فراموش میکنه تو اون زندگی باید یاداوری میکردی به کسی تو خیر القرون تو اون زندگی در حقیقت صحابه و صحابیات باید به طرف یاداوری میکردی که یه چیزی هم بخور فراموش میشه. اما تو جامعه ما امروز نیازهای معنوی و نیازهای روحی ما ممکنه فراموش بشه خوراک روح ما ممکنه فراموش بشه غیر راحت فراموش بشه آخرین دفعی که قرآن خوندی کی بوده نمیتونه آخرین دفعی که درود بر پیانبر خوندی ده تا رحمت الهی رو برای خودت برمقا آوردی کی بوده نمیتونه آخرین دفعی که ده بیقه نشستی با خدای خودت خوب مفصل دعا کردی اون کی بوده نمیدونم یادم نمیاد آخرین دفعه ای که تو مسجدی اعتکاف نشستی کی بوده با خدای خودت ولو برای یک رو 20 دقیقه به نیت اعتکاف رفتی تو مسجد نشستی و خلوت با خدای خودت کردی رجلن خلبه قلبه معلق بالمساجد قلبش وابسته به مسجد شد رفتی تو کنج مسجد نشستی یکم دعا کردی یکم ابتهال و التجا کردی آخرین دفعه کی بود مسلمان های صدر اسلام دنبال بحانه میگشتن تا کوچکترین چیزی تو زندگیشون به وجود میآمد به مسجد اما ما تا مشکلات میاد اولین جایی که ازش پراری میشیم کجاست؟ مسجد همون نمازهای یکی در میان شدرنجی هم که می حالا طرف نمی خوند. چی شده؟ پیلاً مشکلات دارن جناب شهر عذ آن طبیبان را بدید پا برحنه جانب مسجد دوید مولانا یک آیت رو میاره که اون پادشا وقتی که کنیزکش مریض شد و دید آقا از اسباب هم نمیشه، از دکتر نمیشه، از دارو هم نمیشه از یه جای دیگه اینا داره به هم میخوره پا جان جانب مسجد دوید فهمید از یه جای دیگه اینا داره به هم میخوره من باید برم تو مسجد اول مشکلمو یک یکی دیگه حل کنم مشکل اصلی من نه دارو نه دکتر مشکل اصلی من با اون ذات شافیه تمام اون چیزایی که میخوام به دست بیارم یا میترسم از دست بدم همه در دستان صاحب این مسجده من باید برم رابطه رو با این اول درست کنم بعد دنبال دارو بعد دنبال دکتر بعد دنبال تدبیر بعد دنبال چارجوی صاحبه تا بعد تندی میوزید تا ی وضعیت آب و هوایی آشفته میشد فورا به مسجد میآمدن مسجد پر میشد مسجد محل ارتباط و تعلق ویژه به الله بود متاسفانه این ارزشها بسیار عوض شده و خیلی ضد ارزش ها جای این ارزش های والای اسلامی و انسانی رو گرفته دوستم ما میخواییم دنیا عوض بشه اما غافل از اینیم که اگه قرار دنیا عوض بشه سراغاز این تغییر و تحول منه. اگه من عوض شدم دنیا عوض میشه ظهر الفساد پل و البحر به ما کسابت عید ناس آقا اگر دنیا از فتن و فساد شده سر منشه این فتن و فساد اعمالیه که از من انسان حاضر شده و اگر قرار دنیا پر از خوبی بشه دنیا پر از تغییرات مثبت بشه سراغاز این تغییرات مثبت بازم منم ان الله لا یاغی رو ما بقوم قومین حتی رو ما به من باید عوض بشم چرا امروز اجناس گران شده چرا امروز تورم آمده چرا امروز به قول معروف این همه وضعیت اقتصادی آشفته شده ملت و دولت ما همه و همه باید به فکر این بشن که چرا قیمت انسانیت پایین آمده و از اون طرف قیمت کالاها بالا رفته اون آقایی که داره اختلاص میکنه اون آقایی که با راند خاری ها داره خون جامعه رو میمکه کاری داره با جامعه میکنه که گرد گرسنه با یک گله نمیکنه امروز روزنامه ها رو وقتی میکنیم از یک طرف به قول معروف داد میزنن محیط زیست ما داد میزنه به قول معروف این منابع طبیعی ما که مواظب باشید که گرگم نکشید مواظب باشید پلنگیم اگر دیدید ببریم اگر دیدید نکشید خب خوبه ما هم باید رعایت بکنیم چون اینها در حال انقراز همه نگرانند که گرگا دارن منقرض میشن روبه منقرض میشه کسی اق ندار اینا رو بکشه های مختلف حیوانی در حال انقراز نگرانند، جرم تیین کرده ما هم باید به قانون احترام بذاریم بست تو این نداریم اما از یک طرف دیگه وقتی جرائد رو روزنامه ها رو اخبار رو وقتی نگاه میکنیم میگی که آقا گرگ تهران دستگیر شد از اون طرف گرگای بیابون در حال انقرازن از این طرف گرگای انسانی در حال برشت. اغرب فلانجا رو گرفتن شده مگه این به قول معروف سرسیف روزنامه هم شده که اقرب فلانجا رو گرفتن گرگ فلانجا رو گرفتن یوز پلنگ فلانجا دستگیر شد. از اون طرف نگرانیم که حیوانات من نشه از این طرف باید نگران باشیم که انسانیت در حال انقراضه، گونه های انسانی الگوهای سالم انسانی اصفه ها و اون کسانی که انسانیت و دو مرتبه باید به این جامعه پاش بکنن دارن از دست میرن خیلی خوبه که یه تو بیا نگرانن که نسل حیوانات مختلف منغرض نشه اما از این طرف باید مواظب باشیم که از این طرف دیوار نیستیم. نسل انسانی آه میگه که چراغی دست گرفته تو خیابون راه میرفت دنبال چی هستی انسان ما مریضه است انسان ما یعنی واقعا امروز داره دنیا داد میزنه این همه فجائه و این همه در حقیقت نفرت پراکنی ها چین توزی ها این همه جنگ فروزی ها این همه فساد های اقتصادی این همه راندخاری ها این همه مفاسد در عرصه های مختلف داره داد میزنه که چی انسان ما رو بود انسان کامل میبود همه چیزو میبرد سر جاش. و جالب اینجاست که امروز تو جامعه ما ملت‌ها دولت‌ها رو متهم می‌دونن و دولت‌ها کی‌ها رو متهم می‌دونن ملت‌ها رو و با این چیز مشکل حل میشه؟ مشکل وقتی حل میشه که هر یکی از ما چه دولت مردان ما چه ملت و رعیت ما همه و همه آقا امروز ما مفتی اقتصادی نیستیم همون آقا با دست کنار خیابون مقصد اقتصادی نیست؟ سر برادر مسلمانش کلا نمیذاره؟ اونم با همون دست کنار خیابون دستش برسه سر برادر مسلمانش کلا نمیذاره؟ همونی که دکان و مغازه داره به بحانه ی تورم آقا تقیب توقی خورده یه جایی ساخنرانی شده طرف میبینی چه توی پارلمانی توی مجمعی سیازی این آقا توی دکان تقمه مرغ برده بالا؟ چی شده امروز ترام سخنانی کرده؟ خب کرده؟ تو به تو عمر تو چی رفتی داری؟ او آقایی که تو دکانشم هست مفسده امومن او آقایی که دست فروشی میکنه و آقایی که یک سمت کوچکی داره یک مسئولیت بسیار کوچکی داره اینام به هم رحم نمی کنه. یه زمانی بغداد مرکز تمدن اسلامی بود از طرف حکومت بریتانیا یه جاسوسی رو و یه در حقیقت فرضی رو فرستادن گفتن بری ببینیدیم مسلمان ها قوتشون تو چیه؟ چرا این هم این رو چرا اینا تونستن این خط برای عریکه قدرت قرار بگیرن و برای سرنوشت بشریت اینها ها تصمیم بگیرن؟ میگه این جاسوس آمد یه مدتی تو بغداد بود هم روزای اول برای خرید شخصی خودش با لباس مبدل و در حقیقت خیلی مخفیکاری کاری میکرد رفت یه مغازهی خرید کنه. تا وارد مغازه شد خود مغازدار فهمید که این مالی منطقه نیست و مشتری خیلی داغ و خوبی هم میتونه باشه. یه فرصت اقتصادی میتونه باشه. بعد ليش گفت فلانی میخوای خرید کنه گفت بله تو لطف کن از این مغازه بغلی خرید کن از این همسایه من خرید کن همه اجناس و اقلام منم داره از منم ارزم فروشتره اون بله خدا گفت چی چرا از اون بخرم گفت من صبح الحمدلله مشتریام زیاد بوده من فروشم امروز خوب بوده ولی نگاهم به اینه که همسایه‌ام امروز مشتریان چنانی نداشته انصاف نیست کنار من او با دست خالی بره خونهش پیش زن و بچه شرمنده باشه من که الهاندالله دارم از اون کنم من تعجب میکنیم یعنی چی؟ ببین ما مسلمانه ها دنبال کسرت تنها نیستیم ما دنبال برکت هستیم و میدونیم تو کمی که برکت باشه به مراتب بهتر از اون کسرت بیبرکت کسرتی که صرف بیمارستان و صرف دادگاه و پاسگاه و صرف در حقیقت اون شهرخره ها و باچخوره ها و نمیدونم فلان و فلان بشه این کسرت به درد نمیخوره کسرتی که صرف تعمیرگاه و صرف نمیدونم دقتقه ها بشه این کسرت چه به درد میخوره من یک کامیون پول بیارم تو خانم خالی کنم آخر برش همه اینا رو صرف این اون کرده باشه. اما برکت اینه که پول اندکی بیاد تو خانه من اما کانون خانواده رو گرم کنه حریم تو این خانه حفظ بشه. پدر جایگاه خودشو داره. مادر اون احترام ویژه خودشو داره. فرزندها هر یکی لخت جگر و پاره سن این پدر و مادر هستن. تو این خانه اون صلفت و مقدسه. تو این خانه در حقیقت نیاز, نیاز نیست که کسی بیاد اینها رو به زور سر یک سفره بشونه. اینا با افتخار دستشون توی کاسه هست با هم میخورن. این مبارک بعد این بنده خدا برگشت رفت بریتانیا گفت من همه اون چیزایی که در رابطه با مسلمان ها میخواستم بفهمم فهمیدم من چطور گفتن یه صحنه من دیدم تا وقتی این ارزش ها تو مسلمان ها باشه اینا پیروزن بعد چطور بله من یه مغازه رفتم خرید کنم آ منو به موازی دست معرفی کرد که من امروز فروشم خوب بوده شما برو از فلانی بخارد. ببینید در خیر القرون هم ملتها و هم دولتها همه یقه خودشون رو گرفته بودند همه دره و شلاق به پای خودشون میزدند همه خودشون رو متهم اصلی هر بدی دونستند این باعث رشد بود یه زمانی باران نیامد یه فردی تو مسجد اعلان کرده آه این گنهکاری که تو این روستا و منطقه ماست چیه که از نهوست عمل او بارون نمی دست از سر ما برداره از شهر ما بره بیرون تا باران الهی بباره اولین نفری که از مسجد زد بیرون آشفته و سراسیمه زنون مصری بود که خدای من میدونم از من بدتر تو اینجا کسی نیست. و از نهصت عمل منه که این بدیها امروز بر سر این جامعه آمده به معنی که ایشون پابرهنه از مسجد رفت بیرون باران رحمت الهی شروع به باریدن کرد مردم رفتن از عارف دیگری که در اون شهر بود کرد آقا امروز این قضیه شد عجیب ما گفتیم گون فرد بره بیرون زنون مسیرا بیرون و عجیب ترین که باران شروع به باریدن کرد چطور شد گفتن همین و همین فناییت و همین بندگی خالصانه او بود که رحمت الله رو به جوش آورد بارون نمیباره کی مسئوله بله تا وقتی فلانی تو منطقه ما باشه با این همه گناه و با این همه فساد بله مسلمه بارون نمیاد چرا برف نمیباره چرا بارون نمیاد بله تا وقتی دولت ها اینطور تپاول میکنند ها هست و تا وقتی اختلاص ها هست. تا وقتی که مفاصل اقتصادی است، بارون نمی باره. به دولت مردان میگین چرا بارون نمیاد؟ میگه برفا میاد، آد ببخشید میاد رو آد آسمون ها بعد پایین نگاه می میبینه خبری نیست هیچ کسی لایق بارون نمی میبینه می سبزه و درختی هم نیست عبران با ما قرر می و میرن این جواب دولت مردان این جواب ملت ماست یکی هم نیست تو اینجا بگه ها هرکی باید یقه خودشو بگیره تو خیر القرون هرکی خودش خودشو گرفته بود محاسبه نفس بود نه محاسبه مردم عمر امیر شبها دره میگیره شلاغ میگیره به پاهای خودش میزنه یعقی خودشو گرفته بر خودش داره گریه میکنه کمیل میگه سیدن علی شباب بلند میشه و محاسن مبارک خودشو میگیره و گریه میکنه فریاد میزنه های من بعد السفر و قلت زاد خدای بر علی رحم کن رای طولانی رو باید بره و توشه و زاد راهش بسیار کم گذره از عالم برزخ گذره از سآل پرسش قبر توشه میخواد توشش تقوات، توشش تحجده، توشش افتحال و التجاست علی کم داره توشه پلسرات اخلاص للهیته گذره از پلسرات که از سیق از مباریک تره اخلاص میخواده اتدال میخواد ایستادن در میدان محشر جایی که قدم انبیا میلرزه و انبیا نفسی نفسی میگن اعمال میخواد علی نداره علی داره یه گوشه گریه میکنه تو این زندگی عمر تو این زندگی یه گوشه افتاده در رو به پاهای خودش میزنه عثمان غنی به قبرستانها میره از بس گریه میکنه به زانو میفته و میگه های این اولین منزل از منازل آخرت عثمان تو تو این منزل چی میشه آقابت تو؟ این سؤال و پرسشو میتونی درست جواب بدی یا نه؟ از بس گریه میکنه محاسنش خیست میشه و تر میشه این جامعه تو این جامعه هر گوشهی میری نیمه های شب رسول ماک علیه السلام گست میزنه ابو بک رو میبینه داره نماز میکنه آهسته اشکاش میریزه ارحم امتی به امتی ابو بک و جلوی رفتش اصطاده عمر رو میبینه با صدای بلند آیات قرآن رو میخونه و داره گریه میکنه فردا صبح سآل میکنه ابو بک تحجد بله چونقدر یواش یا رسول الله خدای من نه کره و من نیاز به داد زدن داره عمر شما یکم بلندتر نمازتو میخوندی تحجدتو چرا؟ میگه برای اینکه شیطان رو برانم و اونایی که خوابن و غافلن بیدار شروع کنم رسول پاک میخنده میگه ابو بکش شما یک کم بلندتر بکن عمر شما یک کم یه جامعه قشنگیه تو این جامعه ابتحاله مثل جاست تو این جامعه هرکی یقیق خودش رو گرفته تو این جامعه هرکسی خودش متهم ردیف اول میدونه خودش رو تو این جامعه هر کسی به نفس خودش بد بدبینه تو این جامعه هر کسی دنبال ذ합 ها و کاستی های خودشه که چطور جبران بکنه تو این جامعه کسی کسی رو تختع نمیکنه تخریب نمیکنه متهم نمیکنه تو این جامعه همه خوشحالن که ما منتقد داریم ما خوشحال از این هستیم که چی؟ منتقد نداریم کسی جارت نمیکنه جلو حرف سنیم کسی جارت نمیکنه کتایی ما رو به ما بگه اینکه چیزی بلیه اینکه علامت خیلی خطرناکیه که حضرت عمر روی منبر مدینه منوره زمانی که بر دو نیم قاره دنیا حکومت میکنه میگه آقا میخواد جامعه رو محک بزن تو جامعه ای که انتقاد باشه تو جامعه ای که در حقیقت انتقاد سازنده باشه تو جامعه ای که مطالبهگری باشه تو جامعه ای که در حقیقت امر به معروف نهی ازمان کرد و وظیفه همگانی باشه همه اکشار جامعه خودشون رو نسبت به بدیهای اون جامعه مسئول بدونن این نشانه سلامت اون جامعه است. یه زمان یه آقای کوری با یکی دیگه انگور میخورد بعد همینطوری مشغول خوردن بودن یه مرتبه آقای کور به اون یکی دیگه گفت چرا ستا ستا میخورد؟ تو کوری از کجا میتونی من سه تا ستستا میخورم؟ چون من دو تا دوتا میخورم تو به من گیر نمیدی. این نشانه اینه که ساز من میش پر میخوریم. معل امتحان کردم یکی یکی خوردم و یشکی دوتایی کردم دیدم نه صدداد در ننیودد مطمئن شدم تو تا میخوری از من ظالمتری که به هیچ چی نمیدی. خارجدن سه تا ستستا نق اون رو راست میگیر. تو جامعه ای که؟ امره به معروف نه ازمان نیست جلوی فساد سکوت میشه نشانه از اینه که اون فردی که سکوت میکنه مفسد بزرگتریه همیشه فسادهایی که تو جامعه تردیج پیدا میکنه نتیجه فساد مفسد نیست نتیجه سکوت اون صالحیه که کنج آفیت و عضلت رو گرفته و در مقابل مفاسد جامعه خودش رو مسئول نمیدونه یکی از رمزهای های که غرب از ما مسلمان ها گرفته همینی که تو اون جامعه یک فضایی درست شده مطالبهگری انتقاد سازنده و تو اون جامعه همه نسبت به مفاسد اقتصادی دیگران خودشون رو مسئول میدوند تا جایی که بعضی از کشورها حتی بودن آقا کسی مفاسد اقتصادی رو به ما معرفی بکنه یه درسدی از اون فساد رو ما به عنوان حدیه به آقا میدیم مفسد معرفی کنه یعنی اونام آمدن نه با ایمان و احتساب نه با فکر آخرت نه با خاطر امتصال امر الله اونام فهمیدن سلامت جامعه ما در مطالبگریه سلامت جامعه ما در امتخاد سازنده سلامت جامعه ما در امره به معروف نظمان کره سلامت جامعه ما در اینه که جلوی فساد به روش احسن کلیفته همه یه خودشونو مسئول بدوند و اگر تو جامعه اینا از دست رفت اون جامعه که برای همین عمر میخواد جامعهشو محکی بزنه میره رو منبر میگه آقا اگر من در دین خدا کجی بیارم شما چیکار میگونید یکی از وسط جمع بلند میشه شمشیرشو میکشه میگه عمر با همین شمشیر راست بیارم بعد میگه الحمد لله. تو جامعه ای که هستن کسایی که کجی عمر راست کنن قطعا کجی های خودشون هم راست میکنن امروز هر کسی تو عافیت نشسته و نسبت به مفاصل جامعه خودشو مسئول نمیدونه طبقه تحتانی کشتی داره سراخ میشه همه جامعه میگن ایما ایسا به دین خودش موسا دین خودش در اون مسئله آمیانه و محلی ماشوان که میگن بزر رو به پاچه خودش بالا میکشن و بگیم میشه به پاچه خودش به ما چه؟ یعنی چه به من چه؟ تو مسئولی همونطور که تو نسبت به نماز خودت مسئولی نسبت به بینمازی این جامعه تو مسئولی همونطور که تو مسئولی که فاسد نباشی نسبت به مفسدین تو مسئولی و اگر نکردی مجرمی و اگر عذاب فراگیر و عذاب همگانی الله بیاد یک طبقه جامعه رو نمیگیره یکی از ازواج متحرر سوال کرد یا رسول الله اگر عذاب فراگیر الله بیاد در حالی که صالحین متقین تو ما حسن بازم عذاب فراگیر و همگانی الله میاد رسول با بله بله نمیه وقتی که اون خبث و گندگی گناه غالب بشه عذاب فراگیر الله میاد اون زمان همه سر خوش پایان هم میشوزن دوستان من امروز اگر میخواییم جلوی تورم فساد جلوی بزهکاری و مفاسد گرفته بشه اگر میخواییم قیمت کالاها پایین بیاد باید قیمت انسانیت رو ببریم بالا و قیمت انسانیت وقتی بالا میره که همه جامعه ما دولت و ملت ما به خدا برگردن دولتهای ما تلاش کنند با اون میارهای اسلامی و اون موازین شرعی خودشون رو کنن چرا امروز بعد از گذشته خب ما چند روز گذشته دعیه داشتیم فیروزی چل ساله خودمون رو جشن گرفتیم اما چرا هنوز ادهی از مراجع تقلید چرا یه ادهی زیادی از علماء ما هنوز دارن داد میزنن که اون نظام رببی و اون در حقیقت فسادهای مالی از بانکهای ما هنوز جمع نشده چرا چرا هنوز ما نتونستیم حقیقت تو بخش اقتصاد خودمون به یک بانکداری اسلامی و به یک استقلال اقتصادی درست دست پیدا کنیم چرا چرا هنوز در, در حقیقت اون بحث آموزش و پرورش ما نظام در حقیقت درسی ما گرفته شده از یونسکو غرب باشه چرا بیایم از الحاد، الحاد آموزشی اونها ما کپی برداری کنیم و چرا هنوز نتونسته باشیم کنار آموزش پرورش درستی، تسکیه درستی رو ایجاد بکنیم امروز چند درصد دانش آموزای ما نماز میخونن برید به یک دبیرستان مراجعه کنیم چند تا از این دانش آموزهای ما مقداد درست شدن سلمان درست شدن جعفر ابن عبی طالب درست شدن چند تا از این دانش آموزها رو ما تونستیم با اون میارهایی که در نزد اهل بیت و آل رسول صحابه به صحابیات ما اینا رو نزدیک کنیم چقدر نزدیک کردیم چرا هنوز ما نترستیم با اون معیارهای درست ولی خب، الحمدلله میگه از هر جا از هر جای زرر برگردی نفعه ما قطعا نباید به بیرون از مرزها چشم بدوزیم ما قطعا نباید منتظر این باشیم که سرنوشت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ما رو اون کسایی که ساخت نشینها و مفسدین هستند خود این آقای هم در زمان انتخابات آمریکا فساد انتخاباتی او رو شد هم فساد اخلاقی او رو شد. خب آقایی که خودش مفسده هم اقتصادی است هم اخلاقی است اون میخواد ما رو درست کنه. ما منتظر نیستیم ما رو درست کنه. کرام اگر میخواست جایی رو درست کنه همین کشور همسایه ما رو درست میکرد و امروز تمام ملت و دولت افغانستان به این نتیجه رسیدن که کسی بیرون از مرزها میتونه سرنوشت ما رو درست کنه. ما تو خودمون همه ما باید به با الله برگردیم و همه ما باید در کنار هم دیگر دو مرتبه اون مسئول بدونیم خودمون رو یقه خودمون رو بگیریم همونطوری که عمر و علی دره بر پاهای خودشون میزدن و خودشون رو از خودشون دودوی تشکیل میدادن یقه ی خودشون رو میگرفتن دولت مردان ما امروز باید همین کار رو بکنه بحث سالی آمد حضرت عمر در سالی خودش نان و خورش نمیخورد نان خالی می خورد. وقتی میگفتن عمر بخور دیگه آخر شما میگن نه نمیتونم همه جامعه رو نان و خورش بدم اما میتونم خودم نان خالی بخورم و حال مستضعف رو بفهمم به علی مرتزا گفتن آه علی لباس بهتری بپوش که من نمیتونم همه جامعه رو لباس خوب بپوشانم اما خودم لباس ساده میپوشم تا فقرای جامعه احساس حقارت نکنم. بله این کسایی که امروز متولی عمرن مسئولن اونا باید خودش فتح زندگیشون رو پایین بیارن حقوقهای نجومی رو باید پایین بیارن جلوی مفاسد اقتصادی رو به شدت باید بگیرن با شهامت باید بگیرن دیروز هم بنده جلسه ای بود جایی در بهزیسی عرض کردم که اهل بیت تنها داغ پیشانی نداشتند، تنها زین و لعابدین نبودن داغی بر کتب خودشونم داشتن زین العابدین علی بن حسین زمانی که از دنیا رفت یه داغی اینجای پیشانیش بود یک داغی رو کتف شانهاش بود بعد بهش گفتن این چیه این موقعی که جنازه‌اشونو می‌شستن گفتن این چیه بعدا مشخص شد صدای خیلی از فقرا در آمد که آقا شب به شب ایشون باری رو حمل میکرده بر کتفش برای فقرا و خوره به خونه دم خونه, خونه فقرا رو می‌دید این کافی نیست که تنها داغ پیشانی داشته باشیم این کافی نیست تنها تحجد گذار باشیم این تنها کافی نیست که یک مذهبی متعصب باشیم در کنار این بایستی داغی هم بر کتب ما باشه نشانی از زعجر کشی برای فقرها و باشه از اون طرف این مسئولین ما باید این کار رو بکنن ملت ما باید چی کار بکنن ملت ما جلوی اصراف و تبذیر رو بگیرن جلوی یک چیزایی که امروز با تبلیغات یهود و نسارا جزء بدیهیات و ضروریات زندگی شده اینا رو بیارن پایین آقا میدونی تعریف اسراف چیه؟ علما میگن اصراف گذشتن از حده من حقوقم یه میلیون تومنه اگر یک میلیون و پونسد خرچ کردم اصراف کردم من حقوقم یک میلیون و پونسده اگر دو میلیون تومن قسط و قرض و وام و انوای فشار اقتصادی رو بر خود و خانوادم تحمیل کردم سطح زندگی با پایین نیاوردم این اصرافه گذشتن از حد. دو میلیون حقوق داری اگر سه میلیون خرج کردی اسرافه. گذشتن از حد یکی از مصادیق اصراف همینه آقا جامعه ما چند وقت گز... چند گذاشته اگر خاطر دوستان باشه طرف میاد دم مسجد گداه میکنه به خدا ندارم و لا بیچارم حتی پول پوشک بچه ندارم بعد ملت بشینه گریه کنن که آقای پوشک بچه ده یک دهه جلوتر اسم پوشک اصلا نبود یک کنه بود و میرفتن سر شیر می سر آه یه چی میگن تلخی تلی یه جایی میرفد یه ک ای رو میشن ولی کسی خودو بدبتر نمیفهمید اما جامعه ما امروز انقدر ت زندگی رو بردیم بالا که طرف فکر میکنه اگر کنه بچه نداشتن اگر ببشید که بچه نداشتن من چیم ها؟ برنج ما کی میخوردیم آقا؟ الان مستما ترین پس میاد دم در خانه جالبه پول داری پول بدید، نداری کم برنج بیم. می میره اگه برنج برنج می برنج نخوره ما قبلا برنج میکردیم کی بگید اید بی اید بی گویا برنج تو منطقه و دهات ما بلند بشه اما این سال دو وعده خیلی که لکشری و خیلی که به قول معروف اشرافزادگیمون گل میکرد سال یک م... سالی دو مرتبه برنج میخورد اما حالا سالی دو وعده بگید روزی دو وعده طرف با خدا میاد آزدار برنج پاکستانی بخوره بره از این برنج های پلاستیکی که به شکل برنج درست میکنن بخوره در دربا داغون بکنه اما بدون برنج زندگی نمیشه بست که اصلا برنج مال ما نیست الهاز در حقیقت تغذیه همه که نگاه کنیم برنج مال مردم شماله برنج خوشکه برای ای که رطوبت زیاده برنج خوبه منطقه ما که به لحاظ آب و هوایی، در حقیقت یک خورده خشکه گندم ما خوبه برای همین خدا به ما گندم بده یعنی بیشتر قزای ما باید چی باشه تریدی باشه قزای باشه که به قول معروف رزی میکردیم قدیم به این مال ماست چون آب و هوای منطقه ما گندم رو بیشتر میطلبه چون بعد یعنی منطقه ما منطقه گرم و خشک ما بعد چیزایی بخوریم که رطوبتش زیاد باشه مثل گندم برنج مال شماله که اونجا رتوبت زیاده این چیز خوش باید بخورم آقا برنج می نارتی میده هم دارم یه خورده تاقدودی یه بسته هم داره یه خورده ببخشید مشکل فلان هم دارم بعد میره پیش دکتر دکتر میگه کم بخورم میگه آی دکتر من دیدم اینو میگم میگه آی دکتر کم خوردن نگو فقط چی بخورم که این میکسر میده نیست این میکسر به یه غور شربتی به من بدین من کم که نمیتونم بخورم از این برنج پاکستانی و از این نمیتونم پلاستیکی پلاستیکیه نمیتونم دست بکشم چه کار کنم آها چی میشه ما وقتی وسیثه زندگیمون جوابگونی تورم شده مشکلات اقتصادی شده یکم سطح زندگی تو بیار پایین قبلا سالی دوبار برنج می‌خوری یعنی یا هفته ای دوبار برنج بخور چه خبره برنج فروشی ها رو تو شهرستان‌ها نگاه کنید روز به روز در حال رشد از هر گوشه شهر نگاه میکنه یک دفعه مینه مثل لپ لپ یک برنج فروشی در آمد خبی نشان از چیه؟ طلب میگه وله ندارم بله ندارم به خدا میخوام بیمیرم آخرم اینه کیسه برنج دستش قیفتی، قرضی طرف برینج فروشی آمده میگه به قول ما رو سبوم باباش بوده دو سال گذشته. گذاشته دو سال گذشته سوم باباش بوده اومده اینقدر برنج از من گرفته هنوز پول باباش رو نداده این دو سال باباش تو قبر چی میکشه خدا میدونه برای همین از طرف دولتمردان ما یه خوردهی باید واقعا فکر بکنن و دولت مردان ما باید یقه خودشونو بگیرن و بر پاهای خودشون دره بزنن از مدل حکومتی خلفای راشدین باید درست استفاده بکنن و از طرف ملت ما جلوی و تبذیر رو جلوی تظاهر رو آقا برای تظاهر جامعه ما چقدر خرش میکنه یه شب تالار ما تو همین توران چقدر خرج داره سوم و هفتم و چهلوم و نمیدونم سالوم و فلان و فلان و فلان اینقدر درست کردیم سر درار اینا رو کردیم جز بدیهی ها خانه من باید حتما مبل فلان داشته باشه حتما باید ال... سیدی فلان داشته باشه حتما باید یخجل سدره داشته باشه درشو باز میکنی یخجل سدره گرفته درشو باز میکنی یک دونه قابل همه ترفی میافته پایین از سه شب جلوتر برینج یک دونه روبی که روش روغن هم ریخته امخو از بس منده کپک زده چیز دیگه نبوده بذاره بادنجور و گرجه رو گذاشته اون پایین سدره هم هست ببینید کسی که دخل و خرج خودش رو نمی سنجه. حالا یه وقتی از الله تاله به من قدرت مالی داده من میخوام با توجه به قدرت مالی خودم یه چیزایی بخرم تو خونم بیارم اشکال نداره داخل و خرزم این رو جواب میده خود بکنه این الله جمیل و وایحوی با جمال اما وقتی توان اقتصادی ندارم میرم چار تا جنس بونجول چینی میخرم برای نمایش اصلیش رو از همون بونجولای چینی در و دیوار رو خونم و پر میکنم بعد همه سم موازمم الله خراب نشه تا باجناغم بیاد ببینه یه الله بعد خراب شد به درک خراب شد فقط نمایش فقط تظاهر چقدر پولا داره واقعا این جامعه شما می‌خوند الان ولی واقعیت جامعه ما بعد از اون طرف هم می‌گیم آقا چی باعث اینا رو درست کنه چی باعث اینا رو برطرف بکنه الله تعالی به همه ما توفیق عمل بده وقت که تمام نیست حدام گذشته فکن همینم هم اسراف شد الله تعالی به همه ما توفیق عمل بده همه ما دوستان مسئول هستیم همه ما یقه خودمون رو بگیریم بر کتایه های خودمون استفار کنیم بر کمی‌هایی که در زندگی های ما بوده به خدا برگردیم، دولت مردان ما هم به خدا برگردن ملت و رایت ما هم به خدا برگرده سیرت رو مطالعه کنیم، زندگی پیامبر رو، زندگی اهل بیت، آل رسول، زندگی صحابه و صحابیات رو، اون رو الگو و سرمشره خودمون قرار بریم و بر اون مبنا زندگی کنیم تا انشالله الله الله از همه این بحران ها ما رو در بیاره. اگر مهدی و اگر عیسی هم در آخر الزمان میان با چیفای پر دلار نمیاد اونام اگر بیام با چینی هم به خدا یک دستشون قرآن یک دستشون سنت اونام هم دیگر رو تعارف میکنن ایسا علیه السلام به مهدی میگه شما بفرمای جلوه او میگرد شما بفرمای جلو. اونا میبهمن اگر مشکل قرار حل بشه با قرآن و سنت حل میشه اول این امت با قرآن و سنت حل شد آخر این امت هم با ایسا و مهدی که میاد فقط با قرآن و سنت حل میشه این وسط ما هم اگر میخوایم چیزی حل بشه با قرآن و سنت حل میشه هم دولت ما هم ملت ما به قرآن و سنت برگردن و قرآن و سنت رو به معنای واقعی در خودمون و زنده بکنی و آخر دوانا الحمد رب العالم.